أعوذ بالله من الشيء الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سي موقعية الله واللعن الدائم على أعدائهم اعضاء الله، إلى يوم القائله، إلى هملي كمال القتال و لايك، و أنا الأبصر قلوبنا و الذئاب نظرها و لايك، حتى تخرجه أبصر القلوب في النور، فتصل إلى مردن العلما، وتصير أرواحنا معلرة على السكر. مخمنون وحلو ایثهی صلوات کنبليه و علیه مجمعین ایام رو ميلاد منبر و مبارک صاحبمون و مولامون صاحب اصلی و حقیقی حوزه های علمی حضرت ولی عصر رو به جمع سربازان و مزرگه بار که انشاءالله در بردوگاه ایشون الان تجمع افرمودید تبریک ارز بکنم به جمع افوزلا به جمع مدیران عزیزی که این دوره رو تر رای کردن و اجرام میکنن محسوسا جمعی که با جنبه های حساب زاده باهم این نوع از برنامه ها رو دنبال میکنن نران دوم یا سه این دوره که به صورت فوق العاده در حوزه و توسطی معسیسه برگزار میشه این نوعه از دوره که هم باشه از طول تحصیلی که انسان در یک دوره طولانی سپری میکنه که چون اطالب گذیده اساتید اصاتیب برگذیدن مسئله مساله روزه و از طول عادت متعارف تحصیلی خارج از هر کو این اونچه که از این نوع از دوره ها میکنه در ذهن طلبه و دانش پجورگاهی شاخسته تا اونچه که در قالب دوره های تحصیلی تنظیم شده و متعارف برگزار میشه و سپری میشه خیلی دوره ها دوره های است من تشکر میکنم از استاد محترم زنبای نایمیان استاد محترم جنبای مشکانی از عزیزمون جنبای خصوص داده و همراها و همکاران ایشون که تداروک این دوره رو دیدند و با همه مذایق و مشکلاتی که داشت و دارد برگزار میکنند و انشالله با موفقیت هم به فرزم خواهد وسید. در گذشته سولن نگاه به فقه، نگاه متناسر و تجزی، تجزیعی و خورد بوده. حتی اگر ساختاریم هم مثلا به فرق داده می شده هرگز به این نبوده که مثلا اگر ساختار جدیدی ارائه میشه این ساختار برای این است که وجه اجتماعی و سیاسی و تمدنی و زیست جمعی رو حل کنه در همون ساختار هم باز در حقیقت فردگرایانه بوده فق نمیتوان فق رو متهم کرد که در اون شرایط که فردگرایانه بوده سکولار بوده اما فاصله زیادی با نگاه سکولار نداشته چون اینگونه نبوده که فق هرو چارچوبهی برای اداری کشور و حکومت دیده باشین بلکه گاهی کسانی بودند که با چنین رو کردیم مخالفت و غالبا به نحوه غیر سیاسی و متناصر و گرایانه به فقه نگرسته می شود. ساختار هرگز نظام درست نمی کنه. در دوری معاصر و همدلله این دردقه در بین های اندیشمند شیعه پیدا شده که فقه ها رو دستگاه اداره همه شونه مؤمنین و خصوصا در زمینه سیاست و اقتصاد و معیشت و روابط و امثال اینها ببینند در تاریخ شیعه در حقیقت این یک اتفاق جدیدی است در گذشته فقه آمه هم چندان وز مطلوب نبوده ولی با این تفاوت که چون اونا در معرض پرسش از ناهی حکومت ها بودند و نوعا در همین دوره ها آمه حکومتی الفل یا حکومت های داشته در تاریخ شیعه در دوره های خاصی این امکان برای شیعه وجود آمده بوده که حکومتها با حوزه و فقه و فقها همراه باشند. و چون هر از اتفاق می افتاد چندان فقه هم در فکر این نبودند که یک نگاهی کلان بکنند کلان نگرانه و نظام نظامساز که فقه تولید نظامات زیستی و نظامات زندگی رو عددار شد. به این شیع بفق نگاه کنند در مقاطعی مثل مثلا دوری سفابیی که برخلی دوری دهشان نیست و میشه گفت که شیعه که حکومت مقتدری رو در اختیار داشت و سراته سفابی هم با علما رابطه مناسبی داشتند، بلکه متقابلا علما با سراته ارتباط مثبتی داشتن توجیه قولما این بود که به حال تشیع با تشکیل حکومتی توسط افرادی که شیعه هستند فرصت ما میتونیم تشیع رو تقوییت کنیم و از این فرصت باید استفاده کرد هیچ وقت نمیشون دوره صد و ده جلدی مثلا بحرور انبان تدوین شد ولی دیدم خب علامه مجلسی به عنوان شکل اسلام پس دولت سفه نفوذ داره، نفوز می توانیدش باشه اینکه همه احادیث شیعه جن نشده اینا از بین رفته و باقیا ممکن آسیب ببینه و اوماً اون اصول تبدیل شده به اون معمولاً اون چهار بسر و منبر و اثر و که به عنوان منابع روایی ما قلم داد میشه خب هیچ به کار اساسی جامعی نشد این فرصت می دمیستن. با این نگاه به دولت می نگلیستن. در مجموع گاهی حتی در حد دفع افسد به فاسد بد و بدتر اینجور حتی ممکن جمع نگاه به مسئله احساس میکردن که عقل اختزام میکنه کنید مسئلات میکنه سلطین هم بعضیشون خوب اقیدم داشتن بعضی از سلطین واقعا اعتقاد شیئی داشتن منطقه اعتقادی آمیانه مثل مردم که الاغاند و احل بیتانی بودن بعضیشون بودن واقعا کارای که کردن بعضیشون ذوقی داشتن شیلی که گفتن شیلی نشون میده که واقعا معتقد بودن بعضی از از اون هم حال، برای خود چون من از حیث دیگری فرصت میدیدند نفوذ علما رو می دیدن. و اینکه مردم بدانند علما پشتیبانند این باعث تقویت حکومت چون می شود رو که علما پر میکردند خوب خب اون زمان نظام دانشگاهی که نبوده اگر میخواستن تو کشور علم توسعه پیدا کنی باید برختم سراغ علمای خب هر کسی هر کشور رو اداره کنه بی علاقه نیست غالبا علونندن که به هر حال کشور به می میفرنگی ارتقا پیدا کنه تا جایی که مزاحمه دولت و ها نیست و هنر در اختیار علما بود نه تنها علوم دین فیزیک و شیمی هم در اختیار اونها بود ریاضیاتم در اختیار علما بود تا موسیقی دانشهای این شنینی که ظاهرا پیوندی با دین نداره هم باز تخصصش عمدتا در خیار علما بود و به علما نیاز داشتند که با علما همراهشان و یه رابطه متقابل سازگاری رو با علما داشته باشند. اون هم رو خودشون مسائل خودشون رو مشارده میکردن در مسائلی میدن از بر نمیاد اگر علما بوددار نشن این کار رو زمین میمونه مثلا کار قضا رو مثل الامنی نبود کار و دانشگاهی باشد و رشتای حقوق قضا و جزا و امثال ها غیر طلبا هم خونده باشن قضا و حبو نبوده دیر در جامعه بلخری نزاع بود تخاصم بود و ضرورت تحاکم به حاکم، بود و به جای مراجع میکردن خب کسی دیگه که نامو و این که مثلا عمر قضا رو علما انجام میدادن یه حکومتی نبوده بلکه با همین استدلال که مجتهد جامع شرایط برایش واجب کپایی است که کار قضا رو وقتی خلق هست اهده داشه همطور که مثلا به استناد قایده ارشاد باید مردم آگاه بشن سالی دیری یاد بگیرن وقتی خصومت رخ میده بادی کسی فصل و خصومت کنه بین مؤمنین و این ازظهده یک مشتهد برمیاد و حق یک م مشتد منصوب است از قبل مصوم بله این شهریت مصئولون ها رو به عنوان قاضی و حاکم نصف کردند اون احساس مسئولیت می از عیورم دولت ها هم قدرت ها هم میدیدند خب این خل در جامعه که برای در این کشور هست این فقط از علما برمیند همچین عواملی پیون میزد علما رو با دولت ها در نتیجه این گونه نبود مثل الان ما که بگیم یک فقیه در رأس بود و بنا بود که بر اساس فقه حکومت ادارشه برای اولین بار در تاریخ است که انقلابی شده و حکومتی که مایل است بر اساس فقه حکومت اداره بشند نه اینکه اگر مشکل فقهی هست اگر جایی خلایی هست مراجعه کنند بنابراین بوده که یک فقی یک مرجع آمده انقلاب کرده با این قصر است. انقلاب کرده که در مقابل و در عرض برگوهای گنابون حکومتی یا حکومت مبتنی بر فقه رو دائر کن اساس غزی این بوده اینجوری نبوده ایجوه. لحاظه اونا اینجور نبوده گرچه در بعضی مقاطب بعضی بزرگان نفوذ خیلی بالایی داشتن اما اینکه در این حد باشه که بگنه باید ما نظام سازی کنیم شما این نظام اقتصادی لازم دارید باید بر سفر طراحی کنیم نه چنین اونها ها زیر بار می و نه مسائل مثل امروز بود اقتصاد چید مستقلی نبود اقتصاد به بخشی از حکمت تحت عنوان به تدبیر منزل در حقیقت چون اقتصاد اقتصاد خورد بود الان اقتصاد کلان وجود نداشت الان اقتصاد کلان غلبه داره یعنی اقتصاد دولت اقتصاد تعاونی و به منابع منابه عمومی اقتصاد بین الملال مرابودات اقتصادی با جهان که اینا هم اقتصاد است که از اهده افراد بر نمیاد کار دولته اینا نبود اون زمان اینچون این نبوده که بگم مثلا در یک معاملاتی با کشورهای مختلف با دولت ها اگر هم مثلا تجاری بودن کار اقتصادی تجاری میکردن اینجا یه تاجر از ایران میرفت چین اونجا میاد یه تاجر شینی طرفیش بود با دولت قرار نمی کردن هم و خور بود یه کالار می برد می برو کالا می بود می خب از کنم که در یه زب جهاتی هم یه یک از جهات که به مسئله نظام پردازی و علمای و احتمال نکردن این بود که اونها مسائل همانسان نبود که نظامواره بشه نگاه کرد نگریست نظام سازانه باهاش مواجه شد اینجور چیزی زمینه نداشت. اقتصاد اینگونه نبود. سیاست دولت مرکزی مقتدری که همیشه اون امور رو بر اساس موازین معینی بر موازین داره کنن. بر اساس داره همون زمانی که کار قضا دست فقها بود همون زمانم هم پاسخ پادشاه سلاح می دید دستور دیکی اعدام کنن. میکردن این کار رو. فلان آقا رو به نحوی نیست کنن. راشیشان گفت که امیرکبیر ولی تو حمام رگی رو بزنید. کار میکردن کسی هم نمیگفت که شما که رئیس قوه قضاییه نیستید. محاکمه چی شد؟ وکیل ندوش امیرکبیر چرا اصلا میشه جور میجوره به محاکمه نشه؟ اینا نبود. شاهروش خواست چیکار بکوشه. و میکوشت. کسی هم نبود که جورنگاری کنه و بگه این جور جفاست. دولت کسی نمیقدر حرف بزنه. کسی دستگیر میشد. به اتهام اینکه قصد سوی قصد داشته مثلا سلطان غجر رو بکشید و نه موفق نشود دستور میداد همه کسانی که این قضیه رو شنیدن شنیدن که یه کسی قصد داشته مثلا ناصر دشار رو ترود کنید کوین دستگیر کنید بکشید خودش دستور میداد چرا؟ بلکه که این اینا شنیدن و این فکر تو زینشون به وجود آمده که شاه رو می میشه کشت اونی که این فکر به زینش کرده کرده نوید بگونه خطرنات که و راحت با همین توجیه افراد رو اعدام می لذا لحاظا ازان همه که دست علما بود در حقیقت به مراجع مردمی اتفاق می خود مردم به انگیزه در اون خودشون سراغ علما میرفتند. میخوام بگم موضوعات و زمینه هم بگونه ای نبود که یاننا به راحتی شود گفت که خب پس بیم نظام سازی کنیم و نظام غذایی طراحی کنیم نظام سیاسی طراحی کنیم مثلا الانبر که بعضی از ععمم نبود بعضی از علوم این زمینار به وجودورده به مفهوم فعلی علوم انسانی وجود نداشت حالا با یه توجیه هاتی میشه ما آرا علوم انسانی از زیوااز داشتیم بین علم ما بین اوکم ما اما علوم انسانی خب نظر رایج امروزه این است که از زمان کان پدید آمده تقسیم جدیدیست در واقع یک تقسیم اومانیستی علمه و چندان هم دقیق نیست ولی داده. از پذیروفته شده چندان دقیق نیست هیچ ملاک نداره ما اگر بخوایم دقیقتر روی منات تقسیم علم و طبقبندی علوم به مسئله نگاه کنیم ممکنه هیچ توجیهی نداشت روشه یه دست از علوم رو دستی وسیعی است علوم رو تحت علوم انسانی نامگذاری کنیم. حالا با همه توسعه و تذیغی که در دایره علومی که اونها علوم انسانی و علوم اجتماعی اطلاق میشه. این چونین خب این علوم نبودن. این علوم خود همین علوم بهانه خیلی جدی رو و زمینه خیلی اساسی رو به وجود آوردن که فکر نظام سازی به وجود بیاد. اون که بر اساس علوم انسانی گناه اقتصاد علم دارد، سیاست علم دارد، مدیریت علم داره فرهنگ علم داره اینا همه علوم خاص خودشون دارن، خب پس بنابراین و معقولات مهم شدن، متخصص دارن، امور شعونی، می این علوم، پس باید ما در بستر فقیل یه نظام بر اینو تولید کنیم، بگیم نظام اقتصادی، و احساس الان احساس که ما داریم نصفه علوم انسانی در گذشته این احساس نبود ما الان علوم انسانی رو رقیب خودمون میدونیم علوم انسانی موجود رو حوزه رقیب خودش میدونه و به حق رقیب حوزه است، چون رقیب شریعت علوم انسانی موجود چون دقیقا همون احکام باید و نبایدی و شاید و نشایدی و احیانا هست و نیستی که فلسفه عهده داره فقد بر عهده داره اخلاق برعهده داره. این سه دسته زار علوم انسانی فعلی داره یعنی هم گزارای هست و نیستی داره. علوم انسانی موجود رایج بحث های مبنایی داره موضوع شناسی داره هم احکام داره باید و نباید دستور میده این کنیم این باید، باید گونه نباید هم شاید بنشاید تو اخلاق تو ارزش گذاری میکنه و عملا هم در میدان اداری جامعه همین نحش رو بر عهده گرفته یعنی فقه رو و شریعت رو در جوامع مختلف کنار زده عرصه رو بر فقه تنگ کرده بر شریعت تنگ کرده در ایران که حکومتش دینیست و بنابرین است که فقه محور اداریشون باشد هم عملا و شدیدن این رقابت و این به بین علوم انسانی و شریعت علوم انسانی رایج من بگم با مطلع علوم انسانی از نمی کنم لازه یکی از ضرورت هایی که باید بهش پرداخته بشه همین تولید علوم انسانی است که این همه رهبر فرحمند و اندیشمند و هوشمند عزیزمون دهه هاست که برش ترکید میکنم تولید علوم انسانی اسلامی تحول علوم انسانی و گامه و چندان درخوری هم در چند دهه برداشته نشده در لاغل مقام عمل مقام آموزش در مقام آموزش محسوسا در پجورش حوزه وارد شده چند سالی اما در آموزش من اصب باید گفت که همچنان همون بلونسانی سکولار در دانشگاهی متدریس میشه بچه های متدین، معتقد انقلابی میرن تو دانشگاه همین دلوست سکولار رو میکنن متخصص یا علم انسانی معیم میشن با همون رو کرد و با همون مبانی و با همون محاسبات و نتایجی که از در مقام رحمون دادن به جامعه و گره بوشایی از جامعه و حل مسئله در اولوانسانی سکولار مطلب همون رو یاد میگیرم میان تو جامعه میگن و این وضع بی سامان و پریشان و آمیخته و مشروشی که ما تو جامعه ممون داریم که هر کسی یک نگاهی نظری هر گروهی میاد یه رواندی رو دنبال میکنه این دولت جور اونیکی دول دیگه در هر دولتی افراد مختلف با نظری های مختلف و نمیتونیم مستقلشی برای قراری که قرار اقتصادی ایران باید اینجوری اداره کرد این نیست به جهت همین است که هم آراء در علوم انسانی سکولار متفاوت و دچار تهافوته هم احیانا که بیش بعضی آراء اسلامی هم تولید شده اینا با هم در تزاقوم هستن در تعارض هستن و انتخاب نشده و نمیشه و نتیجهتا ما نمیتونیم بر یه میزان یعنی اگر ما رو لیبرالی لیبرالی اداره میکردیم بس شاید بهتر میشد، ولو لیبرالی سکولار خیلی خوب معلوم تکلیف روشن بود الان بلا تکلیف ایمان ما اقتصاد اسلامی تولید نکردیم مدعی هستیم ادعی مصر هستن جا از اون ولی در عمل همون نظریه های اقتصاد سکولار که در دنیا وجود داره همونو برن هر کسی هر یه نظریه رو تغییر میکنه ولی اونم از اون اشکالیش مشکلش اون هم بود طوریون که اقتصاد سکولار و اقتصاد لیبرالی رو مثلا میخون اجرا کنن حداقل اینکه بر مبنای یه نظریه معین جلو میرن تا آخر تکلیف روشن انجا همی طوری نیست چون ما نظر نیستیم یا هستیم تصمیدیران ما صاحب نظر نیستن در نتیجه تشویش و به صراح خلط مسائل و مبانی و آراء و مکاتب بعض رو بیسامان کرده بر حال اینکه ما علوم انسانی به این شکلی که امروزه در نخشافرینی میکنه 100 سال پیش 200 سال پیش نبود به این از جمله پیدایش علوم انسانی از جمله عوامل است که عملا اگر نه ضرورت که ضرورت هم هست لاغل این فکر رو الغا کرده که آقا ما تو اقتصاد چی داریم در فقر کامل ناقص درست کار آمده نیست پس بعد ما یه نظام اقتصادی مفتنی بر تولید کنیم و همینطور در زمینه ها و حوزه های دیگه اتفاق افتاده حال الان یک اتفاق فوق العاده تحییم و تاریخ سازی در ایران داره میوفته، البته به موازات در بعضی از کشور ها هم از این نوع جریانات الان پیدا شده در کشوری عربی، کشوری آفریقایی، بعضی متفکرین، بعضی جریان ها، خوب و بعد هرچی، اونا هم مطالعات خیلی خوبی دارن تو این زمین ها میکنن در ایران هم خون قضیه مطرحه و اگر این چالش ها و این معارضات و این تشویش ها روزی است راه به جایی ببره و به یک وضعیت روشنی و منسجمی بتونیم دست پیدا کنیم این دوره دوری تاریخسازی خواهد شد بعد در تاریخ علم باید مطالعه کردید که چه اتفاقی در این عهد و در این دوره اتفاق رخ داد که به هر حال کسانی حرف تازه در فیق زدن و کسانی دو تحصیل آمدن وارد مطالعات دینی شدن این اتفاق که این روزه می‌کنیم، از انزمی که خیلی تأیید نمی‌کنم و اگر طلبه ها مشورت میکنن که ما مثلا درس دانشکاری هم بخونیم و نخونیم بیشتر مایل هم بگم این درس اصلیتون بخونید و تو محیط دانشکار لازم نیست برید ولی مطالعه میتونید مطالعه کنید دورهای ببینید. درشته های در موقع ممتزجی تراحیش در خود حوزه این درست رو بخونید بیشتر ما هم اینجور کنیم. اما خوب می اتفاق در تاریخ شیعه افتاده در همین چند دهی اخیر و یک دهه اخیر و دو دهی اخیر ببیشه که ما هزاران تن طلبه داریم که دو تحصیلا ما با دانشگاهی ها سرکار داریم. الان من در خدمت جمعی هستم. اسات هستم در همین سفری خدمتون مشرف شدم وقول مشرف شدم و خب ما یه همایش سروزه همایش ملی صات معنوی الان در جریان بیش از هزار نفر از پزشکان ثبت نام کردن کهیه همایش شرکت کنند و پروم چند نفر شرکت کردم الان اصلن تو همین از صبحه درگیر بودیم داشتم خوب فکر می کردم که خب این آقایون پزشک پزشکی استعداد میخواد معمولاً اینا اون علوم و مبادی که می کنن در قیاس با سایر رشته‌ها اینا با ساده و افراد مستعد خاصی به حساب میان خود رشته رشته موجهی، معتبری، مقبوله و داشتم فکر میکردم که خوب ما بحمدلله الان حالا با. گوشش کنید میخوام مقایسه کنم ولی در مجموع امروز خیلی به این فکر میکردم که حوزه این مقدار متحول شده که هزاران تن طلبه داریم که مثل دانشگاهیا همین اون تحصیلات که دانشگاهیا میکنن ایش اعتقار میکنم من مثلا دکترم من استاد دانشگاهم طلبای من داره در, در این سمت هم ببینیم که تحصیلات خیلیشون در و این تحصیل رو هم کردن. آگه دانشگاه میری نمی‌رفت، معلوم نبود. احیانا خیلی پیش از این درس می‌خونم. و ما نمونای فراوانی داریم که زمین که استاد تمام دانشگاه در خارجگو هم هست. این اتفاق، اتفاق جدیدی افتاده. این برکات داره. این اتفاق اگر خوب مدیریت شه و از این ظرفیت اگر استفاده شه، این اتفاق خیلی بزرگی است که تبیق نشده رخ داده. یعنی کسی نمی‌مده از مراجع بگن برید دانشگاه درست بخونیم ولو خب یه مقداری احساس روانی نسندان محتروبی در بین طلبه‌ها، اساتید، اساطید و حتی در سطح مراجع ما نسبت به تحصیل دانشگاهی وجود داره که خیال میکنه کسی مثلا یه لیسانسی داشت خیلی مهمه نه ما برخورده و بازی از که مثلاً خیلی کمکان تعریف کنم گفتم پسرم مهندسی خونده ها ولاد حلبام هم از معلم میبوم مهندسی خونده و یه نم برایشون مهمه یا بعضی از ادارات در همین مستوای مرزی من خودم خلافشون بودم که استناد میکردند که ما دونستم میخوام تأثیر کنی و بعضی از دانشگاه تأثیر کردن بعضی از چهره ها یا عازم دانشگاه تأثیر کردند دانشگاه امصاری علی سلام که دانشگاه و و تأسیس کرد رزولوتال علائی تا دانشگاه رازیمی که مهم های در موقع در مشهد تأسیس کرد تا دانشگاه ورعی که مجموعه مساوی اردبیلی تأسیس کرد تا دانشگاه عدالت که محمود طلوع شمشاوردی تأسیس کرد و دانشگاهی که علما در تراز مرجعیت تأسیس کردند این میتونه دوایی مختلفی سبب شده باشه اتفاق ولی یکی از دوایش هم احساسم این بوده که خیال می کردن دانشگاه تأییس کنم بعد چشمن برن دکترا بگیرن این اینمراجع من میناستم بچه هاشون رفتن دکتتررا گرفتم احساس کنم از این خوشحالم پسر من معم هم هست وگه دکترام گرفته چرادل این حس من... نامصاح که من خیلی خوشم میمد از این حس خب بینشون بعضی این در حوزه در نظام داری حوزه وجود داره که بعضی اینناقا رو مجبور میکنه این که من را کس تحسیز کنند چون این رو هم باز از زبان خود همین هزارات من شنیدم که گلمندان میگن و آقا های نابجا میشه یا به تحبیر ما حالا این تحابیرون بزرگان نمی کنند جوز چون نیست ولی ما بخوایم ارز کنیم میگیم آقا یک دیوان سالاری خشک و خشن و خسلی خیلی تندی داره بر حوزه میشه و این آقا ازیت میکنه اینو بخواه روش این تاسیسه کنم اینا پیش نمی میرن بلرز وزارت علوم مجوز میگیرن سری مجوز میگیرن و امکاناتم فراهم میشه دانشگاه دانشگارا میذارن یا نیرو تربیت میکنن ولی در هر حال کسی از بزرگان رسما نظام آموزش حوزه رسمی حوزه رانده طلبه ها رو تحصیل دانشگاهی و همین مدرک دادن پول درست کرده طلبه سطح 2 و سر رو مدرک شلو رفتن یا دکتری مشغول شدند این دیگه برده جای ایراد کرده شده آقای دکتر و آقای دکتر هم کشته دیگه به سخر رسیده دیگه لازم نیست درس که دیگه شده دکتر دین این خوب آسیب رو داشته ولی این فایده را هم داشته که اینا که رشته دانشگاهی خوندن دو تحصیل شدن با دو دیدگاه یا از یه روی کردی دیگری متوافق با روخلت که مطالبه ها به این مسائل و امور داریم نگاه میکنن مسائل این خیلی فواید داره اینا عواملی است که تاثیر گذاشت من دوستانو پرمیده بودم راجب نظامسازی در مکتب فیخیه است آقا نکاتی رو عرض بکنم خب آدم خیلی گرفتاری هستم مجال مطالعه نداشتم من آقا مادارکم نبود آقای جمال مشکانی لطف میدونید چند تا مقال و مكتب هم فرستودن ولی فرصت نشد ببینم تا دیشب مختصری و سحر امروز مختصری نگاه کردم خیلی مطلبت پراچنگم نیمون چون اجمالی نگاهی کردم مجبید فرصت نمود ولی مختصر با همین مقدمی که کردم که مقدمم اندیشیده نمود یعنی برنا نداشتم این ارازو کنم و با همین مقدمه پرتوی میافکنیم بر تفکر فیخی آقا با توجه به شخصیت کیشون دار این رو بی تاثر ارز میکنم خدا گواه این اصر روز ميلاد هستواجت احساس میکنم از درون این رو صادقانه از درون احساس میکنم ذره تعصب در این چیزی که میخوام ارز میکنم نیست که بگم یک مرد نادر تاریخ ایران امروز در کشور زمامون رو به دست داره واقعا مادر دورانه فارغ از هر گونه که چون طلبه این چون انقلابی هستیم چون برای شون مجتهده، فقیهه، مرجعه یا حال ما ارادت داریم به ما محبت داره نمیخوام بگم در اون زوایای پنهان ذهن من اینا تأثیر نداشته در این پسیر ولی حس درونیم اونیم بلوجدن میابم این رو که من صادقانه در پیشکار خدا در این روز مقدس از کنم که یک مرد نابقه و نادره دوران که نظیرش در تاریخ کم بوده قطعا کم بوده و اگر با مجموعه خصوصیتشون رو ببینیم نباید بگیم کم بوده، باید بگیم نبوده همونطور که امام این بود که نبوده یعنی ما تاریخمون نواقع بسیار داشته اما امام در ظرف تاریخی خودش هربتی میگیم حالا امام مثلا اگر محاصر مرحوم آخوند بود ممکن بود این حرف رو نشه زد اما امام در ظرف و آقای در ظرف تاریخی کنی دیگه نظیر نداره در تاریخ احتیاطاً میگیم که کم نظیرند واقعاً بی نظیرند. مردی با این جامعیت که با این سوابق تجارب با در طول تاریخ مگر آخوندی داشتیم که رئیس جمهورم بوده باشه خب یک کسی هیست سال یه کشور در معرض تلاتومات عجب و قریب رو اداره کردی این کم چیزی نیست؟ فکر نکنیم مثلا این چه رفتی به اشتاعت خب بودم دیگه نیزای ناینی و مرحوم آخونده خراسانی و بزرگانی در نهزت مشروطه داخل بودم خب دستی از دور براتش داشتن اگر پیام از تهران نمیرفت معلوم نبود در بعضی موارد ها ورود کنند در بعضی جا فتواهی که دادن فتواه بدن اگر از اینجا کسی پیغامی نمیداد معلوم نبود که مثلا میرزای به پتوای تحریم تنباکو و به حکم تحریم تنباکو برسه خب این گونه حال اما با شرایط تاریخ که پیش آمدید مردی نظف دیده در حدی قوم رو فصل دیده، مشهد رو نفصل دیده بزرگانی رو دیده با بزرگانی آشناس مبارزه کرده زندان دیده تبایید چشیده با روشن فکران بوده یعنی قبل انقلاب ایشون که سنیشونم خیلی کم بود چون ایشون تقریبا میشه گفت جوانترین رهبران انقلاب بودیشون جوانترین رهبران انقلاب بود. نسبت به سن در حدی که در مستوای رهبری رس کنید اگر شهید بشتی رو در اداد رهبران بگیم شهیدوتره در اداد رهبران بگیم بعد از امام مثلا آی منتظری آه در تالوانی رهبران، پیشه ببینیمشون ببینیم، نسبت بقیه سنشون از همه کم ولی در همون دوره، خب کسی بود که با جرگی های زمان خودش با چپ ها، ها، حتی ماشرت. که گاهی بعضیت همین روشنپکی ها نبد شد که روشنپکی های چپ، چپ قبل انقلاب که غالباً گرشن مارکسیستی داشتن که بگنو با اصلا ایشون نام ببرن از روشنفکران سکولار، چپ، مارکسیست، آکادمیک و دانشگاهی، آکادمیون به قول جوانان از اینجور جور نام ببرن میگن آقا اونا به در روشنفگی به موزه پاییشون نمی رسن. چون در مسائل روشنفکری هم خیلی جهل این تجربه ملاوذه با طبقات روشنفکر کمتر روحانی در قبل انقلاب داشت. آلوان در فضای هرزه در فضای سنتی بودن ولی شون با محیط روشن فکری بوزگار خودش کاملا معنوس بودی خودش خیلی تحصیل گذاره در جهدی فکری اداره و حکومت در متن جنگ بودن خب یه کسی بعضی آلون بگفتن می آقا میخواد شما کتاب حج شروع کنید. اول یه مکه بری دو عبید. بعضی از آزم روزگار خود مارو نام بردن که حج گفته بودند بعد ببینید که مکه رفته باشند بعد که رفته بودن مکه و برگشتن کلی خیلی از فتواهشون عوض شد بود خب یه کسی هایت سال تو متن جنگ بعد فپرجهاد میگید که خیلی فعل میکنه هایت سال مدیریت در متن مدیریت جنگ مدیرت فنی جنگ ها، اینکه حالا به عنوان نمانده امام ایشون بسند جره درش موردن، ننکه میرفتن سوهنانی کنن، تبریک کنن، نخیر، تو مزال نظامی ورید میکردن من شنیده بودم که میگفتن در اتاق جنگ زمانی که بسند عملیات تردایی کنن، خب، همه امره و اون زمان اصطلاح امره و سرداران متعارف نبود، ولی همین چهره های برجسته مدیریت جنگ و فرماندهان جنگ از ارتش و سپاه هم بودند. من شنیدم دو بارها و بارها طرح عملیات این بزرگان نظامی سپاه و ارتش میدادن و ایشون رو بزرگ داشته هر تحریم میدادن یا چند تحریم میدادن بعد شون وارد میشده همین پدیگ گفتن که طرح عملیاتیشون درسته این جواب میدن بعد من از شاید پرسیدم از ما نوتا گفتن میگرد که آقا در مسئله نظام خیلی فوقرنده است اینجوری همینو نقل کردم بایشون جوزه سران فرماندهان برجستی جنگ بود دونی هشت سار شاید ساییاد شیرازی همینطور بود وقتی میشستیم تراهی عملیات بکنیم همه حرف میزدن که ارتشی ها دوره نظامی دیده بودن جواسل و از زیرا بودن حجربه نظام می داشتن کارشون بود سنفشون بود شغلشون بود اما وقتی بحث می شد ترهی دادی می شد نظر که می نظر همه دقیق می کرد این تو ای که به امام می که می گفتنه لباس جندی علما آخوندان لباس جندی بپوشن قبیه. یعنی یه فنی که اصلا هیچ سنخیتی با قضیه با سنف ما نداره و سلمت و سلمت و سلمت و سلمت و این مهان خوری ربطی ندهه مها که حالا شما همه جوانیم دو انقلاق بودیم خودبنده مثلا شاد بودوفترین پادگان شهری تهران رو من تصرف کردم معروفه پادگان قرمولکی محلی اون بود محصر تا مونمخه خورتم هم دست همو نگرفت بودیم این افترهای وادگان بودن و شام مینشستیم با هم کهپ میزدیم مچول رو نمیدادیم گفتن شما فلسطین دور دیدی اخیات کردم بید و کلی کار انظی بلیم طلا و بل نه به سرگزی هم نرفته بودیم خب ما یعنی این این بین طلب اینجوری وقتی همطور آیات مرگ هاشی سرگز رفته بود اجباریه بودن سرگزی آقا سرگزی هم نرفیم اون دری حال توی مثل نظام اینجوری ورود داشت تسلط داشت وقینو در قارا تاثیر میذاره جهات این فرد بگه یا کسی که رنگ سلاح رو ندیده تو تو مکنه اون فقیه که گفتم مرحوم عراکی از از باب نمونه گفتن حج گفته بودن مکه رفته بودن گفتن نظرشون تغییر کرد تو مساله حج چون ال عین وقتی میبینه خطا تاثیر میذاره در هوای فرهنگ در تاریخ ایران اینو با قاطلیت عرض می کنم. مختصر یک طلبی هم که تو حوزه فرهنگ تعملاتی دارم. یک کامل و پس فرهنگ ترایی تر کردم بدون اتقای به منابع موجود. یه دور بحث کردیم. پر هستم. چه این سال هم است درگیرم از در تاریخ ایران کسی فرهنگ شناستر از آقا نبوده. اینو با دقیقت و با فرضی که مختصری کارشناس عمرم دارم از میکنن که اینقدر فرهنگو فرهنگ رو بپهمه فرهنگ عمره بسیار پیچیده ایه. بسیار پیچیده است و اون مایه که در فرهنگیشون تولید مرهبت کرده بیان داره اگر جمع بشه باید میدارم کسی بیننده زیادی فرهنگ سوهان گفته باشه و تونه که رشتشون رشتی دانشگاهیشون استاد مثلا بمایز فرهنگیست خود مغوله فرهنگ خصوص چون ایران رشده فرهنگ نداره هنوز هم نفره رشده فرهنگ داریم نه دانش علم فرهنگ نداریم رو میشناسه مغوله تو هنری رو میشناسه کم داریم از مراجعمون، از مراجع ما کمان کسانی که هنر رو میشناسن سرکن که بگیم مثلا موسیقی مطرب حلال حرامه که باید نمیکنی که مگه فقط هنر موسیقیه مقولات چناخت چناختیشون از انواع مقولات و هنری داره در مجالسی و موارد فراوانی در بعضی از ها که مختصر سرشد داشتم و حاضر بودم و مرتبط بودم دیدم ارز میکنم در ادبیات عدیب قطعنی که از ادوای برجسته تاریخ ایرانیشون شعریشون قطعا از فاخرترین اشعاریست که در این دوره یک ای ایران میمونه حالا شعرشون منچر نشدید چند تا غزر بیشتر ندیدید از شون. و در هم نیست منچر کنید شعراشون ولی خب بنده معنوس هم آشنام ولی جلسات جنگ موجود دوست چار نپره داشتیم شعرخانی شعرشو شعر بسیار سخت و بخدهیه شعر اصمونداریه خب خیلو شعر میگن از شاعر بود بنده دیوان ولی اصلا قابل امام نیست. امام شاعر بود واقعا. دوق شعری و قریه امام قوی بود. قلمی که در بیانیه‌های امام میزد به یه آخوند فقیه پیرمرد مرد ساله نمیخوند. بوی قلم دکتر شریطی میداد. پیرمرد پیر مرد, یه پیر مرد یا آخوند فقیه مثلا شهرستانی پرس و با ادبیات عرفانی با ادبیات فی قلم وقتی میزد حماسی میغاست قلم بزنه بیانیه بده رو بود امام فوق العاده بود. و بر او آمد می گفتش که این بیانانی که اقا مییسه میه کاریشون اجتماعه می گفت آقا سریه جبران می کرد و چون بین خودشون می گفتن آقا شما نکست به آقا ما می گفت اینجوری مینیه کاغ میزه و دستش نه رو میز. یه یک چیزی زیردستی همین رو همینو می تمام میشه یا بیانی ده سپیر می نیست پاکینز رو اینام نمی شود یا یک کلمه رو ختم می زن اون زیبای عدیبانی آنچانانیه جوان پسند دانشگاهی پسند امام فعال بود ولی انصاف اینه که شعر آقا شعر فاخریه قطعا در طراز بهترین قضا سلوهای این دوره ادبیات ایران هشاری جمابل به و بیست شعر رو میشناسه اوزان رو میشناسه قافیان رو میشناسه و جزیات دانش های مربوطه شعر رو میشناسه جزیات دانش های شعر رو میشناسه با این به اسطلاح اسطلاح هم میگیم رباهی میگیم بر وزر الله, الله خود همین رباهی بیشار وزمه تشخیص این بیچارو در همین یه دو تا بیت ربایی که این بچ بش... که از این اوزان بیچارگاناست خیلی کار سختیه هر کسی نمیتونه بوده من جلسه‌ای بوده که استادی که استاد شعرا نامی این ایام اونا عروض و قافیه بر اون آقا خوندن مرحوم شده های اصولهای آهی خب نامی بود همین گفتم دید رو عروض و قافیه فعال دست اصولهای آهی ولی من بوده در جلساتی که من میدم آقاییات میفت بهشون بمیمونه این اشتواسی اشتواسی تسلطی که بر فن شعرشون داره موسیقی همینطور نمیخوام بعضی از اینکات را ارز بکنم الاغانی اسواحانی رو چند جلده؟ دون دیدید؟ العقانی اسفانی کامل خونده به هاشی زده یعنی اگر در موسیقیشون فتوا میده میدانه چی رو داره میگه خیلی مهمه خیلی مهمه که شما شناخت موضوع بنده به محض اینکه موضوع رهبریشون اعلام شد در خطبه های قبل از نمو تهران قبل از اعلام جای مدرسیم کدومشون اعلامی چرا؟ به دو جهت یک عالمیت به این نیست که اصطلاح انباشی از اصطلاحات و اصولی رد متعلق تو ذهنمون انباشته بشه عالمیت به این نیست عالمیت به پرعلمی علمی نیست عالمیت به مفهوم دقیقش است که مفهوم ثقیب میگه در علم اجوابیات در فهم کیفیت فهمه کسی وقتی تیز میفهمه کیفیت فهم داره این عالمیت این میتونه خوب پتها بده مثلا خوب تشخیص بده. این یک جهت. جهت دوم موضوع شناسیه. فهم موضوع اگر نگیم 51 درصد چون عمل انگاه 100 درصد نشداریم. موضوع خوب نفهمیم؟ نه نمیدونی سری که اون ترشیم. موضوع تی نمیدونی چه چه فتواهیم. موضوعی نمیدونی فتواه داد. نمیدونی فتواه داد. موضوع شناسی در مساله اجتهاد و اعلمیت فوق از دل نقش داری متوجه ما هر خیال میکنیم بعد یه پنج شش تا علم بعد بلد باشیم اصول بلد باشیم اگر نه آرا و آراو بدونیم تفسیر بلد باشیم چنطو اینجوری هست ممکن که دیده باز دارن تو اون رساله رساله اجتهاد تقلیدشون که زمینه یک ویرایششه زمینه رسائل ایشونم مراجعه شده تهرانی و اونو منسکرد اونجایشون نوح تا علم علمونام میبره که مجتهد باید با این نوح علم آشنا بشون کنش دارد کن الان باید بگیم باید نوزده تاییم قرح هم باید نوزده تاییم کسی علوم انسانی ندونه میتونه اصلا فتوا بده چه من فتوا بده میتونه اجاب اقتصاد فتوا بده میشه ببان بانک فتوا بده رو بعضی از فروع حتی رهبا فتوا بده اقتصاد نمیدونیم چیه وقتی تجارت ندانیم چیست چگونه به موضوع نمیشیم شناخت موضوع فوق العاده نشاورین در اعلمیت و اجتهاد و اعلمیت کسی اگر موضوع شناس است درست مانند دانست که شناس آنکه حق شنا تر است ا آن است, است. آنکه و با اطمینان و خاطر آسوده و الانم خدا رو شاکرم که خدا هدایت کرد بسیار موقع اگر مطلب شو رو گفتی چی بعضی از افراد خاصی گفتی من موتقدم چون علم از موجود اون زمانه شناخت موضوع فوق العاده است ذهن منسجم داشتن ذهن منسجم داشتن ما شروط اجتهاد و شعور مرتبط به این قضايا رو در حوزه قضا همینطور در حوزه ملایت همینطور اون شروط و مواسفاتی که قائلیم و قطعا قطعاً مسئله انسجام فکر فوقلاده است ذهن ریاضی داشتن، ذهن منسجم داشتن حافظه قوی داشتن حافظه قوی داشتن به همون دلیلی که پس از دلیل شرط صحت اجتحات، حافظه داشتن هم شرطه ولی که حافظه قوی نداشته باشی ولی فرص کرده و یاد اطرفته باشی ندیدی انگار فرص نکردی حافظه بهوز داشتن حافظه مشرف داشتن بر و جهات مختلف نگاه نو داشتن در این تحفظ بر مبانی، تحفظ بر سنت ها تحفظه بر منطق منطق اشتحاد در این تحفظه بر آراء آزم بیان که به تبلید بکشه تحفظ داشتن ولی جورت هم در کنار این تحفظ داشتن خب من خیلی شاید اطلاع ندارم ولی اینجور به نظرم میرسه که ما هنوز نیمدیم که لگال خر مورد اشاره شده نداریم یا اگه من نمیدونم که آراء خاص ایشون رو آراء نو ایشون رو تا بکنیم چون حجم استفتائات خیلی خیلی بالاست خیلی سال پیش شاید مثلا 20 سال پیش حجم استفتائات به بالای 7000 رسیده بود است به بیشتر از سایر مراجع میشه همین الان در مجموعه دفاتر استفداییشون حدود دو هزار نفر مشغول کارند. به خودم وقتی شنیدم تعجب کردند. این همین یعنی مراجعه؟ فرد مسئول زیلفت، نام ببرم که آی محمدیان که معاون مروحوظوی دفتره، شون می گفتند. حدود دو هزار نفر فقط دارن استفدایت جواب میدن. دند. اینه اینقدر از بین اینها ها جدید، آرای خاص که بر اولین بار فتوا داده شده یا فتوای خاص و گره گوشا داده شده بیان که بیانزباطی کنه انسان در اشتهات چون بعضی فتوای جدید میدن بیانزباطی میکنه با تا به جدید میدن در مقابل سر نست قرآن فتوا این که نمیشه نوابریکه که اگه این باشه که چیزی دیگه از شرعیت باقی نمونه نه با تحفظ بر انصطبات فنی اجتهاد کسی حرف نو بتونه بزنه این هنره این اون چیزی که مطلوب تحمل فقه و اگر ما فهرست کنیم کاش ما این امکانی می داشتیم کاش این ظرفیت رو مؤسسه ما می داشت. و خدا کنه روز این ظرفیت فراهم شد که ما بتوانیم این کار انجام بدیم خیلی فنی و دقیق و اصولی آراء نویشون رو تبعیندی کنیم چقدر ای داره اشداد تقلیدی که پایده نداره. به نظر بنده طلبه اشداد تقلیدی حجت نیست. برای اون کسی که اشداد تقلیدی میکنه حجت چونه تقلید میکنه. مثلا مقلد دیگه اگر واقعا به اشداد به معنای کلمه نرسیده خب تا تاثیر آراء استادش چیدایی اگر اینجوره اگر قوه داره که مشروعیت نداره نباید اینجوری به آراب استادش اعتماد کن اگر در حد که نمیتونه از استاد عبور کنه پس مجتهب نیست اجتهاد تقلیدی اجتهاد تقلیدی ارزش نداره اجتهاد نیست در واقع به معنیل کلمه اجتهاد نیست اجتهاد است که گره خوشا باشه راه باز کنیم اجتهاد است که رویکردی اجتهاد کنه نمیخوام همه چیز رو مثل بعضی شعارهایی که میدن بعضی افرادی که هستن برمان فقه مقاصدی از عدله عبور کنن نه این جایز نیست ولی جهتگیری خیلی مهمه روکرد خیلی مهمه اینکه شما به فقه نظاموار اندیشانه نگاه میکنی تا اون که متناسر و جزگر و فردگرا نگاه میکنه فتوبار و رای فرد میکنه اون که به فقه حکمی نگاه میکنه به مقاصد شریعت هم توجه داره مقاصد شریعت جایگزین عدله نمیکنه. این درست نیست اما مقاصد شریعت و به جهت توجه میکنه اون فتوبار چیز دیگه میشه این ممکنه بیاد بگه این یه میلونو بده یه چوب بیزه روش بذار مشکل حل میشه غبا نیست اما که امام میبینه هرگز چون فتو جورت میکنه بده این رو کرده نمیزنه مسائل همین که ارز میکنیم نظام سازان نگریستن به که به لطف خدا با مطارب که از تیمان فرمیدن اولا باقعا شیستت آرائه که دادن بعد از او به تدریج فوزرهای جمعونتری وارد شدن مطالبی گفته شد داره خب خیلی شرایط مسارده به وجود میاد که این نگاه میتونه نگاه غالب باشه لیگه باشه به گره و باشه اما خب هنوز که هنوز این اونسان که باید جا نیفتاده یعنی ما بعضی از هامون که به شدت از بعضی رفتارهای احیانا دولتمون کشورمون نظاممون مسئولینمون نارازیان هم،, هم و بسا و غالبا هم به حق ناراضی هم. اما همین بزرگان ما هم که به حق ناراضی منتقدند و انتقاد چون احیانا بارده اما خب یکیشون یه قدم برنه میداره که بگه خیلی خوب من که دارم میگم باید و چنان کرد مشکل نظام بانکی دارید نظام بانکی رو حل کنید بره یه فقیه مبارد کاری مثل کار پنجاه و چند سال پیش منو شهیصد رنجا بده البنگ کلا چون ببین اشونه کاری ابتدائی اونم تد تاثیر و اونم برای یه کشور سنی اونجوری که گفته میشه خواستند و کتاب رو نویشته برای اونها یه فقیه شیعی در اجابت هستی درخواست و با یه زمان خیلی محدودی هم میشه کتاب رو نوشته. ولی پنجاه سال گذشت کار کارستانی هنوز نشده و از بانک همه زندگی اون پرا گرفته درست یا درست مقام قانون شربطه مشکلات حل کردن ولی مقام عمل مشکل داره هنوز بزن بانکی در مقام اجرا میگه اقود ولی نه که پول میاره تو بانک بذاره مثلا میفهم اقود چیه نه اون کارمندی که اونجا نشسته اینو تبین را میکنه که شما به من داری وکالت میدی که من برم در قالوم فلان عقد پوله طوره به جریان مونده، اونجوری نیست اصلا اون میگه چقدر سود میده؟ میگه ماهانه و سود میده، سالانه و سود میده برزه از این بانک ها سود ثابت دارن میدن واقع بعضی ای این از آقایون که اون قانون با... بانداری به دولو بهره رو تررای کردن امدتاً دانشگاهی بودن به همراه محمد رزبانی و یه جلیساتی همون زمان داشتیم و همین بزرگان همین آقایون دانشگاهی و میمد. خوب میدیم بود. خیلی خوب حالا حس کنید که این پول رو با این پول در قالب عقد کارش سود کنه سودش رو طرف بدم درصد پیش مثلا اما این پول 20 درصد سود کرده خب باید این در ضرر هم شریک که حکومتی حکومت دلش خواسته بیشتر بده اینجوری که اینکه نیست که حکومت حق داشته بیشتر بده 5 درصد بیشتر داده. مثلا اهاد مملکت اینجوری میشه خب یکی از آزن بیاد پا پیش بگذاره یه مرضی تقلیدی بالا سر یه جمع فازلی بایسته چهار تا اقتصاد دانم تو این جمع باشن چهار تا آدم که اقتصاد پول خوندن فهم از پول دارن فهم از ماهیت پول جدید دارن پولای جدید فراون شده از بانک دارن از اینجور قضایی هم و بیان بگن آقا ما حالا این میشه نظام بانک اسلامی و یه آیه بدن بعد یه نمون تونید کنیم اما این روکر در بعضی از خواهیمان نیست ولی در رحبرمان زمقلاب هست ایشون در موضوع شناسی و بلازه بوکرد شناسی بلازه آشنای و موزلات دیو ارسای دی از کل طولانی شد به مسائل جهانی اندیشیدن جهانی اندیشیدن خیلی مهمه جهانی اندیشیدن ما در مقام فقط بحث کلامی باید بگیم که اسلام دین خاطم از هست, جهانی هستو کنی به چنان هست؟ در مقام عمل شریط چند جهانی دیگر که از این شریعت استنباد بشون بود، جهانی هم شد این باید بیگنی مساره رو نگاه جهانی و بینونه داشتن خیلی تأثیر گذاره در بو ما مجموعه خصوصیات و ویژگی که در بحبل محضان این قلعه سراغ داریم حفظ الله و این در فرقش متجلدیه منطقه خوب یک کار دقیقی میخواد زمان میخواد حوصله میخواد و افراد خوشفکری که رو مستقر بشن و این جهات رو تأثیرات این حیثیات رو از سوی ببینن از اوارم از سمت آرایشون بیان بالا ببینن چه هر جدید چون خب خوب متاسفون این ها در دسترس ما ارادت داریم مرتبط هم هستیم در حال اسمی بنده بسیلا رای سعیت و بنای آثار ولی خب این کارا در حدی که باید و شایسته است نشده بعد بشه انشالله دوستانم این کار بکنن من همینجا هم مجددن از استاد محترم دارو درشنائی میان با سپاس باتار سمیمن و عمیقا از ساوی هم از استاد جوان و پرتلاش و خوشفکر و پر و پرکار و پر انگیزه جو باید تشکر کنم از جمعه بوسوساده باز هم تشکر کنم از جمع اون گروهی که با هم دارن این کارا رو فعال میکنن مدیریت میکنن اجرا میکنن با همه نواقص و نقاعث باید تشکر کرد. و بر اساس همین اتفاقاتی که افتاد بخوام ارز کنم که پس این کار از شما برمیاد بنده هم بفرمید اگر از من کاری ساخته است بریم فکر کنیم این جهاتی که ارز کردم من همین ظرف این دوسته از دوستان مؤسسه تنظیم نشناسه را سوال سال خواهم کرد اگر این کارها شروع نشده احیانا و کار درخوری نشده ما به اونا بگیم که مؤسسه آمادگی داره این دو حیثی که از کردم معصوی با توجه به مبانی و شخصیت و مجموعه خصوصیاتی که ایشون دارن و اون خصوص تأثیر دارد در فقیشون دارد فقیشون از اوورم در کف فقیشون بریم فحض کنیم جستجو کنیم تحلیل کنیم و ببینیم برای اون چه میشود از تلفیق این دو روکت بتونیم برسیم به تعریف دقیق هم مکتب فکیشون، و خصوصیات و احساسات مکتب فکیشون. و اونچه که قابلیت انتقال به غیر داره که دیگران هم میتروند از این تجربه ایشون یک مجتهی در میدان و حاضر در صحنه عمل و اجرا که از زبان خودشون من شنیدم که اشون بفهمدن به اشکال مختلف هم شنیدم از جمله این مورد رو ارز میکنم جون گفتن روزانه 2 تا 3 ساعت مطالعه می کنم بعد برگشن گفتن این مطالعه غیر از اون طریقه کیست اون فقه چدارا تو دیگه اصو تا نمیکنم غیر اون 2 تا ساعت در روز مطالعه میکنم من که خود من داشتم گفتم ما که چاندان درگیر نیستیم کاری نیستیم توی من گه برگشت نمی مطالعه آزاد بکنیم من چند سال به چند سالم یه کتاب نمی خونم شما هم کتاب کتابای غیر این سکه درس های دینی رو با خوب ولی نمیلسم اصلا. این هم, هم کتاب تولید کردیم. ولی شون من فهمدن من دوست ساعت غیر متعالی فکری روزانه مطالعه میکنم. در سه نوات در روز مطالعه میکنم. خوی فردی با این جامعیت و این ظرفیت جای ارگوگیری داریم واقع ازشون انشانله قرمگیری کنیم. انشانله تعمالی بکنیم. با رای عیمیانی فکر بکنیم ببینیم. خدا کمک خواهد کرد، یعنی مزومیت این مرد کار خودشون میکنه و ما قصد کنیم انشاءالله در محضر فوزالایی مخلص و با وفا و با صفا از جای مختلف تاشو موردن خدمت اساطیب بگیرن، اینجا قرار میزنیم روز مورکیز، روز میلاد و مورکست و جد برای نایب مزومی شکال بکنیم انشاءالله، بریم که اگر کار اساسی من بپرسن از آزده اگر کار اساسی شروع نشده در این حیثی که میشه ما بیم انجام میدیم ولی کمک میکنید بکنید نمیکنید دیگه جوری کارش میکنید خودم کمک میکنه مشکلات چه بشین انجام بشه خیلی پوزشخوا هم من نیندیشیده در جلسی بسیار بسیار گرانمایی و وزین شما صحبت کرد هم جان نداشتین این صحبت کنید بنامود که من یه بحث. مونسجم اینا از کنم بلی گیم روز ایوان این بود که هم مطالب زنم برسه خدمتو از کرده بوشم در خدمتون هستم اگر بنابر سوالی جوابی نردی و پیشنهادی هست من خدمتون هستم اصلا الله محمد والد قیمیم برمید من واقعی این است که در حوزه امدتاً فلسفی فرهنگ که معتقدم در خیلی از رشتا از جمله در فقه فرهنگ کسی اگر فلسفی فرهنگ کار نکرد باشه، نمیتونی فتا دقیق بده در فلسفی فرهنگ نسبتاً وقت مفصلی بودشتم تیگه چند سال در دهه هشتاد البته تا سال هشتاد و نو که یا نقد که اون آرازه در ما پیش آمد مدتی دوره نسبتا جامعه ساختار تر رایش شده ها، کاملا همین فرصول بیسر پشکانه رو بحث کردم در سایه او مقداری هم مباحثی که از اون میشه به نوان دانش پرهنگ تعبیر کرد هم مقداری کار کردم و بحث کردم اما اینکه که مثلا یه فقه فرهنگی، مثلا فقه ثقافیی عرض کرده باشن نخیل. این بود که بعد از اینکه ما این دو وحش رو که بنیادهای موضوع شناختی این رشته قلمداد میتونی بشه یه وقتی یه بحثی رو شروع کنیم که توفیل دست ندارد به دلیل اشتغالاتی هست و دستگیری کنان جریان دارد. نه ما در روزی فلسفی فقه فرهنگ وحسی رو کاری انجام نشدیم. در که مطرح کردید چماندر نظرهای عزتاها ها استفاده شده؟ در فرهنگ یعنی اونجا بر حال آراء غربی ها رو مثلا در مسئله تعریف یا معلفای فرهنگ در اینجور بحثا آراء غربی ها رو که خیلی کار کردن غربی ها در تعریف فرهنگ چند تو کتاب داریم دیویستا تا ست صفحه که فقط تعریف فرهنگ این چند ست تحریف فرهنگ رو تحلیل کرده اونا رو دیدم آراء فلاسفی داخلی رو هم دیدم در این اداد نظرات آقا و نظرات هست ایمام رو هم تحلیل کردم تلقی که از فرهنگ هست ایمام داشتن شد متحلید داشتن بعضی آتولا مصباح داشتن امثال این آزم اینا رو بحث کردم به این صورت نه این از آرا احتمالا متاسر هستم حالا قاعده نکات مطالبی که شو فرمدن در متاسیر گذاشته باشه اما اینکه مستند کنم مطالب رو چون در اون قسمت که بنابر نغ داشتم مراجع کردم بیست و محور بوده فرسفی فرهنگ در یه محورهایی آرای که وجود داشته مراجع کردم از چه نردی می شود کرد؟ قالبا من با این روی کرد بحثا رو انجام میدم در اینچه در بعضی از سرپسلا که کسی کاری نکرده یا لاغل ما نتوسیمت تا از خربی ها مثلا وجود چناسی پرهن چیزی پیدا نکردیم دیگه بحثا روی یک طرفه کردیم به اون صورت نه استفاده نکردم تاسفانه ولی به توال قبیل متأثر هستیم اون آراء و نظراتیشون مطلی برمست سوال دیگه ای که فرمونده این حالا دیگه من مزموشون را کنم به بیانات هزتالی آیا رئیس جمهوری کشور اسلامی هم روزونن باید آشنا و متخصص ترخ نظام ساز باشه با تعجب به اینکه بینش اجرایی و گذاری های متخصصانی صورت بگیره یا من به نون یه طلبه دارم ارزو کنم مختصریم در همین فخصیاسه مطرح کردیم و در جریان ساختاری که داریم خواهیم رسید و از خواهیم کرد مترادم روی اصایی قواباد مجتهد باشن و بسیاری از ملکاتی که ما برای ولی امر یا احیانا ازاد قائلین و از از مناصلی دیگه به اون دلائل روی اصایی قواباد مجتهد باشن و ایلا در خیلی از مسائل پوچاره در تنها اجتحاد سایر، مثلا مسئله رو که ما تو اون حسسون کسی که شخص کاندیدای ریاست جمهوری بشه عادل باشه میگم یه نفر اگر یه جا ویشت نماز بخونی یه نفر میخواد اقتهاد کنه بعد عادل باشه میخواد بیاد میگه پنج قرون یا دوزیده باید شاهد عادل باشه بعد ببین ایناها که تریلیون بودجه در اختیارشه این لازمه باشه من تصورم من است که خیلی از رو که ما ولی امر الهی فینو ولات مستها رد از ولی بسیلا بولات کبرا قیادت کبرا، اینا بولات و بستان من تصوارم این است که باید سرطه اشتاد و در این ها هم لحاظ بخوییم اگر حکومت اسلامی دینی پلو یه اوام بیاد نمیتونه داره کنه اواموانه داره کنه کنه شاید نمیدون، من دو تا نکته فرمت سردان ارز دو در نمید که من حضرت به خاطر این هست که این که سواله شفاپی رو سلام گفتن که تا جای که کتمان نشه اطلاعاتش به دلیل اینکه وقتی که این فشورگیری بر ها هست الان شما می‌بینید که ما از به استدلال هم تا حدی علم داشتیم اگر جلو بودیم و این سوال ها تموم شده چه ارادی نداره من تا امروز که اینجوری پیش نرفته اوکی که من سلام ناز کنم بعضی‌ها بعضی که خیلی زیاد مشاهده میشه که سوالاتی که پرسیده میشن به استاد تحمیه هست، آقین، صحیح نیست که ما این صاحب را از پشت کنم فرنابی و پسیم این رو به از ایران جزی ها سامسا استاد حزت حزتی استفاده کردیم از محصول سادیا عشد، دیستا آزبیه می شو مستانیم این دروش آقا چقدر نمون داره در سیاستایی کلانه که از آقا تدویل می کنند. یعنی آیا می‌تونیم این رو مثلا می‌گویند میشه سیاست‌های کلی رو بر جیت شرعی مادرش مثلا کرد با اون مبنای خود فقه عزت‌آوا داره آیا میشه پی وقتی مثلا کلان در این سیاست‌های کالبنداتی که آقا همش بر اساس یک روش فقهی تنظیم میشه اگر بلا بشه که ولی امر سیاست‌های کلان کشور رو در موضعات مختلف تنظیم بکنه اما این نسبتی با فقهش نداشته باشه چرا که شاید تشتارت میذاره این یه جهتی یعنی میتونیم بگیم که اینا آراء فیقیشون هم می تواند به حساب بیاد بلایز ماهیت این سیاست ها هم بادروش فکر کنیم این سیاست ها یا احکام حکومتی نیستن حکم حکومتی فقط در همین است که بگن آه. مثلا یه وقتی گفتن راجب روزنامه ها مجلسی چیدی می خواست تصمیم کن آیست گفتودن گفتن حکم حکومتی بعد اون می حکومتی اینکه حکومتی این مثلا میزای ناینی مثلا میزای فرض کنیم. تحریم تنباکو ها بودن اون بعد میشه یک آیا سیاست هایی که برای اداره کشور میشه حکم نیستن اینا نه یه قسمی از احکامن دیگه و قهر باید بگیم که متنائن فقهشون در متن این قوانین سیاست ها همسر این حضور داره دیگه قطعا اینجوریه برای نموده روشن باشه بله روشن این هم تو آرایشون پیدا کردن دینا میشه جستجو کرد که آقا این مب... این اصلی در این سیاست مبتنی بر کدوم مبلای فقیه قرار این طوریه دیگه یعنی آقا که نمیاد سیاست ها رو بنمیسه یا مزمیش تسکیست بنمیسه بده هم رو نگاه بکنن ابلاغ کنن بدون که نگاه کنن با روکرد فقی بگن این جهات شهریش چه می شود قطعا این مراهزه می شود طبعا به نظر میاد اینا یه دسته از احکام حکومتی هست احکام حکومتی ب می